رامین لطفا فردا من را زود بیدار کن فردا خیلی کار دارم تو که فردا کلاس نداری؟ نه کلاس ندارم پس چیکار کار میکنی؟ فردا چند نامه مینویسم و پست میکنم یک نامه هم به پدرم فاکس میکنم برای من هم یک نامه پست میکنی؟ بله نامت را به من بده برایت پست میکنم تو فردا چه کار میکنی؟ من و دوستم این هفته مطالعه میکنیم. ما خودمان را برای امتحان آماده میکنیم. چند ساعت مطالعه میکنید؟ از هشت صبح تا ساعت دوی بعد از ظهر. شیش ساعت مطالعه میکنید؟ خیلی زیاده است. البته نیم ساعت هم استراعت میکنیم. ساعت دو نهار میخوریم. پس لطفا من را ساعت شیش صبح بیدار کن. حتما.